کتاب کیمیا اثر نیما شصواری خدا خدا خدا خدا این واژه دور و نزدیک در زن های ما این نام که به طول بودن هایمان به طول نفس کشیدن و قد کشیدن هایمان همیشه و همیشان را شنیده‌ای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 به طوری که هر کدام خدایی در دل و ذهن داشتیم. با ما حرف میزد و ما همیشه او را به حرف ما می داشتیم. می گفتفتیم او میشنید حرف نمیزد اما گاهی که خیشتن اراده می کردیم، او هم به صحبت میآمد و ماما درد و دل میگفت. عصبانی می شد آرام بود گوش میداد و گاه فریاد میزد. هر کاری که ما می کردیم، او هم می کرد. از هر سو و هر جانشانهی میجستیم جستیم صحبتی کنیدیم اگر خوشمان نیامد به اون نسبت میدادیم و او بود که بزرگ و بزرگتر میشد شد انقدر به پیش میرفت رفت که سراسر زندگیمان را فرام گرفت حتی از پیشتن و زندگی من به ما نزدیکتر بود و هر کرده و نکرده را با او پیش می گردیم. و این تناقض دوری و نزدیکی هایش را به طول تمام عمر از خاطر بردیم و با اون گرفت. به طول تمام کتبی که انسان تاکنون در جهان نگاشته به این گیر کردن و دست و پا زدنمان در این دنیا وان القاب به وجود ناوجود او مدیون و به فاش شده لیکن اینها چه درد از دردهای هزاران ساله ما کم خواهد کرد نه بر دردهایمان هم خواهد افزود و در این آشفتگی و کلافگی به پیش خواهیم رفت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 از زشتی ها و ظلم‌هایش، هرچه هر که که بود را گفتیم و هر چیز را به اون نسبت دادیم و تمام زشتی های جهان را سرچشمه از وجود او انگاشتیم، و جای جای باورهای من ازل او را در جهان خواستار شدیم و همه اینها را خیش میدانیم جه بسیاری که به واسطه حرفها حرفا شاید به درازای عمر ما را کافر پندارند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 آنجا که آرزوهای تمام عمرش را به دل دفن می کند و پاره تنش را به قتلگاه میفرستد تا جان دیگران را نجات دهد و ناموسشان به دست ددمنشان نیفتد آنگاه که او را در آغوش می و می و زیر لب او را به خدا می سپارد و از خدا میخواهد که حافظش باشد آیا تمام این فریادهای ما بران خداست؟ آری بران خدا بران که جنگ را به وجود آورده به آن قادر مطلقی که هر اتفاق ریز و درشت جهان به اذن و اراده او شکل می‌گیرد و پایان دادن این جنگ ها برایش مثال آب خوردن است لیک ساکت می‌نشیند و آرام به ریش همه آدمیان می‌خندد تمام فریادهای ما بر سر آن خدای خونخواه و خون طلب است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 قانه میکنه دو و قانه می شود اما سراخر به واسطه مخالفتم دستور قتلم را نخواهد داد و این وجدان بیدار درون انسان هاست نمالک و فرمانروای عالمیان. این وجدان خدای صحراهای دور نیست و هیچ ایچ باورها از اون نگفته و نخواه گفت لیک درد ما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 و بدبختی به آورد، او همان خداست خدای در برابر ما و تعریف این خدا وسیع و بیپایان است هر زشتی که در این جهان شکل میگیرد بانیش همین قدرت پرستی ها و نگاه خداوارانه به جهان است که از خدا نشعت گرفته ما در میان تمام رزب از این نام یاد کرده و در برابرش شنیده ایم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 در کنار اینها فریاد و جنگ ما با آن خدای میان زهنها که فرمان به خموشی میدهد تا از عالم قیب دستهای پنهانی به کمکش بیایند نیز هم هست آری ما با آن خدا که فرمان به درجا ماندن و درجا زدن دهد نیز می جنگی.